صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله و آله قیدین و خافرین و و که رو که فعلا در اصول ما به خجج و جانشین امارات مطرح می کنند یا به اصطلاح ها مقصد ششم از اصول قرار دادن و بعد هم مقصد هفتم در اصول عملیه و مقصد هشتم در تعارض از شد این تقسیم بندی که سه بخش سه بسمند. به این صورت از حصول شیعه در که در حصول و, و سنخل سنت یا خودمای شیعه مثل سرس معالم به این صورت وجود نداره این تقسیم بردی رو از از زمان مرگوم شیخ همساری شروع شد که در حقیقت خود مرگوم شیخ هم این رو تقسیم نکرده بود پیش آمدی توضیحاتش گذرش تکرار نمی کند بنابرای ایچ با که از که این مرخوم چهار رساله مجزا تعریف کرده بودن به هم برهم نداشتن و حجیت المدنه یه رساله ایشون بود که در این حجیت المدنه اقتداعا در درباره پت بحث کردن و درباره حجیت زن و رسالتون برایه از اشتغال که این هم رساله مستقلی بود و رسالتون استخابیه یا رسالتون که استخاب که نه هم رساله تو دادانهی بود و رسالتون فتحا برود و ترجیم بعدما این چهار رساله رو با هم دیگه جمع کردن و برای اینکه ارتباطی ایجاد بشه تقسیم بندی همچون این برد شده در نسخه اصلی شیخ این نبود اصلا برهای اینطور شد که سه مقصد شد مقصد اول در غرض دوم در زن و سوم در شک این تو خود الرساله ها نبود به جای از مسئله اول اینجوری بود و عمل غرض در که این چهار رساله رو با هم دیگه جمع کردن این تنظیم رو هم انجام دادن شد یک بخش شده در در کتاب حصولیه بعدی بحث قرض رو جدا نکردند، بحث قرض و واقع دو بجهد و همه را قرار دادن بحث براقر و اشتغال رو جدا کردن باندان حصول احمدیه تا دو ترجیم هم که خب جدا شده بود. به سال دیگری بود لذا از این کتاب های بعد شیف و علاوه از های این کتاب درسی محبوب چه خایه این طوری شد این تنظیم بحث این صورت، در کلمات و قدمای ما در قدمای احلی سنن وجود نداشت مباحث الفاظ را پنج مقصد که جفایه سه مقصد هم حجت و امارات یه اصول عملیه دو و تا یا تا آر سه شد هش مقصد مقصد و حسول شد هش این را من دیگه چوزیه چنین یه روز با پرچ کده بود تو اجاز شد از کدید که انصاف قضیه توضیحات مفصلی صحبت کردیم از مناقشاتی که اصحاب در اینجا داشتن دیگه بقیه مناقشات جاش اینجا نیست نیازی نیست نیاز. ما از کردیم به جای این بحث بهتر این بود که اصولا رو همون تنظیم طبیعی که اعتبارات و قامونی و همون بحث طبیعی جلو بریم نه اینکه که یک بندی که احساس ندار به نظر ما بس در اول در موانس اصول اول رو درباره حقیقت اعتبارات قانونیه ترابط این اعتبارات و نسبتهایی که این اعتبارات با هم دارن این رو متعرض بشیم در بخش دوم متعرض مسادر تشریف بشیم که متعرض در کتاب ما کلا وجود نداره فعلا. که و سنت و اشما و استحسان رو مطالبی که گفته بحث به اصطلاح دوم رو اون قرار دادیم بحث سوم رو دو بزنی سیازه ایجاب جا کرد بحث مرحله تنجز تکالیف، تنجز اعتبارات قانونی. که این تنجز اعتبارات قانونی چه صورت خواهد؟ خواهی نخواهی بحث تنجز شامل هر دو میشه هم شامل امارات میشه هم شامل حسول همسی کردیم که در اعتبارات قانونی ما تابعه واقع نیستیم سر قوانین فیزیکی مثلا کشور قوانین فیزیکی جوان پیهت یا تهبیار رجوع یا طبیعت اون مورد علوم طبیعی دیگه ما اگر در قوانین و اعتبارات قانونی تابعه رسول به ما کند اون آسال جزایی احکام جزایی بر وصول که نوع انتقاش در ذهن مختلفه تا این انتقاش نیاد هیچ نوع تنجزی پیدا نمیشه این مرحله تنجز ما اصطلاحا این توضیح رو کرارن عرض کردیم ما از مرتبه جل سه مرتبه به عنوان موادی جل داریم که مناتار خاشه خوب و برز باشه به ارازه و کرارن سه مرحله هم بعد از مقام جهل داریم اون سه مرحله بعد از مقام جهل هم یکی مرحله فعلیت که تازگی توضیح داریم فعیلیت معانی مختلف داره به نظر ما فعیلیت یعنی انسال رسول و انزال کتب یعنی جعل قانون در وسائل ارتباط جمعی یا راژیو یا تلویزیو یا مجلدات یا جراره یا ارهایی که هر نظامی و قانونی در خودش تیمی کنیم مرتبه بعد از اون مرتبه تنجزه که اون مرتبه است که وصول مکلط هست مرحله اخیر هم مرحله امتصال یا اسیان. این هفت مرحله در هر حکمی هست خود و حکم سه مرحله مبادی حکمه سه مرحله متأخر از حکم پس وقت ما اول اثبات کنیم که ما مرحله به نام تجز داریم چون اگر مرحله تنجز ثابت نشد دیگه جای بحث حجب خبر دو استثاب و و براقه و جایی هیچ کدوم از ما نباید بود ما دنبال باید اتداعا مرحله تنجز بشیم مرحله تنجز از هر مرحله که چه نسبت به خود هم و چه نسبت به موضوع انتقاش صورت در ذهن مکلب باید بشه تا به ذهن نرسه و اون حکم رو ندانه یا موضوع رو ندانه اون حکم منجل نباید شد البته ما چون در اصول هستیم متعارف به و اصولی ما اون که در مرحله تنجز نسبت به حکم بحث میکنیم مثلا خمر حرام هست مثلا. اما اینکه این مایه خارجی خمر است. آدتا تو افواس و اصول نمیان آدتا جای بحثشی و اصول نیست نگه کلیات خاصی که آیا به موضوع باهد موضوع خارجی ثابت می شده بلا عادتا جای پشکیس سهریات در اصول نیست پس ما در بحثای خودمون و کردیم در کتاب رساله هم شیخ همین رو از و درستم از اعلام اند المکلل اول تفت ایلا خوفید شریف ما فعلا در بحث تنجز مقاماتی که به این به اون حکم کلی اون حکم شرعی برسی میکنه تنجز اونها هر صورت جز به انتقاش صورت نمیشه این هم سواد اثبات بشه حالا فیلان اصل موضوعی قبولش میکنه و هر صورت که انتقاش صورت نسبت به تکلیف عادتا دو جوره ما دو انتقاش صورت داریم یک انتقاش صورت به معنای, معنای انفعالی که نفس انفعال پیدا میکنه. دو انتقاش صورت به نفعه ادائی که نفس ایجاد میکنه. و از تو که امارات اسم اول هستن به نفعه انتباعی و رسول عملیه اسم دوم هستن این توضیحاتشو رو اجمالاً عرض کردیم تا اینجا رسیدیم که برای تنجز به اصول عملیه که ادراکات ادعای نفس هم هستن میشه اتفاق کرد راه هست و درست هم هست بنای شرعی هم هست بنای باقلای هم هست که این این اصول عملی. اون وقت ما در مواحث اصول عملیه یعنی برای این که راجع به امراه بحثی شد و مهورهای متعدد بحث بیان شد راجب اول سؤالم اگر عرض کردم مالم شه قدس الله نعم اگر رو بگویم کردی که اما شک در تکلیف از در مکلفون به در مکلفون اما لوح ذمه حاله سابق یالا یا لوح یا ذمه حاله سابق بعد ادالا یا, یا شکل یوم یوم لا یا یا در لرزتی و یا مکلفون به در مکلفون در میوم میوم چه اختیار لا میو چه اختیار ایشون شواهد است اع تو در آوردن و آنهایی که پردازیشون آمدن حالا من بحث که این هست نسبت به مورد مراد ما از مورد یا یوهزه حالت یا لنگلا هست یا مثلا یوم کنر و نسبت به وارد یا نسبت به حوه مثلا در اون جایی که یوم کنر افتیاد بگیم برایت جاری میشه یا لازم نیست چی جاری میشه بحثی دارن هزار، که این چهار انحصار در این چار تا آیا عقلیز یا استقرائیز و پرس کردم سابقه هم یعنی خلال بحث ها که الان روشندتر ما در امور اعتباری دلیلی بر حفظ عقلی اصولا نداریم اصلا ترهیم مسئله های حفظ عقلیز یا عقلی نیست به نظر ما سقیلی نیمید اینه یک سمخ اعتبارات قانونی هستن یک سمخ راه های احکام ادعایی معینیست سوال ادعایی معینیست که هر موقعن یا وامگذار میتونه قرار بده میتونه قرار, بده، میتونه, قرار بده، میتونه کم بکنه میتونه زیاد بکنه اصلا کل مرحله تجدد یک مرحله اعتباری یک مرحله ذاتی اینطوری در کلماتی نامده نیست لذا ما خیلی دیالوگش این که حال کلان هست که از حال خیلی وارد بحث کلا نمیشیم مضافا به که این که این چهار اصل این صورت به است جاری انتشه خودشون چون قبول ندادید یه خیلو خودونو معطل باید هست در موضوع یا وارد نمیکنیم. از کنیم که اون وقت ما ادوات دیگری وارد شدیم. از کردیم اصول عملی که در احکام جاری میشه در خدا این به دو صورته یا خداوند خوک رو با یک نوع صورت ابداعی اثبات میکنیم. ولی زم هر مورد مختلف میشه. مثلا در یک جا حرمت میشه در یک جا وجود میشه یا نه به یک عنوان انتظاری با یک صورت انتظاری دیگه درست میکنه اونجا دیگه همیشه یکی میشه مثلا صورت انتظاری مثل افتیاض افتیاض نمیگه پک میگه میگه اگر در اطراف علم اجمالی قرار گرفتیم شما سرگ بکنیم هر دو صرف رو انجام بدیم حالا دای هر دو صرف واجب اینه انجام و یک طرف واجبی که مستحبه به یعنی این یکی مستحب یکی اصلا حرام یعنی تر، هر دو حرام اون کار نداره که اون طرف چیه. اون میگه از صورت مجهولی برای شما در اطراف علم اجماعی آمد شما باید مراوهاتن اطراف رو بکنید. کل واحد در اطراف رو جمع بین اون اطراف بزنید. فقط ناظر ببینید. این سوش احتیاض میشه. اما یه دفعه نه، اصل مورد به مورد فهم. فرمسیم مثلا این آب سابقا نجس بود تم میکردن الان میگه اون نجسه. این زن یه روم وقتی ها الان هم میگه یه روم وقتی ها همون خوب رو بیادیم سابقا شما وقتی که تفمیدید مقبون هستید خیار غرب داشتید خیار داشتید از آن هم به نقل استمرار اثبات خیار میکنه میگه خیار شما باقیه ببینید یک جا میگه خیار واقعیه یک جا میگه یک چسته یک حرام یک این جا جا این اون خوب رو اثبات میکنه این اصطلاح ما اصول عملی هستن که در خود رو رو میشن نه عنوان مجهول یا عنوان یجب بل اجتناب انا اصلاف علم اجمالی اون یکی بل یا یجب بل اعتناب و علم اجمالی اون خود که پاید از موارد انتبارش را این نه این میاد اثبات خود نسبت به این اصول که جنبه ادراکی داره و اثبات خود و حکم از اونها تربیه کنم به اصول غیر تنظیمی شرم اونها این در محل خودش و اونطور که الان در کتاب مردم و آمده سه تا قرار داده برایت احتیاط و تخیر، نسبت به تأخیر اول تأخیر ببین نسبت به تأخیر چون مراد از تأخیر در جایی که انسان چاره ای نداره یا بالاخره انجام میده یا انجام نمیده و راه دیگری هم نداره لزومیت عقلی مثلا میدونه که نظر کرده در روز مثلا که روز چهارشنبه ساعت 12 در مسجد باشه یا نباشه ساعت 12 خودش در دفترش نوشه کلمه باشم یا نباشم الان مبهمه نمیتونه کنه بخونه واضح نیست خط واضح نیست خب بلاخت ساعت دوازده یا خرس یا نیست دیگه که یک از این گزار این اصطلاحا تخییر میگن تخییر در اصطلاح اینها عبارت از اون جایی که بلاخت انسان یا این وقت را انجام بده یا نمیگه به اصطلاح لابدیت حقیلی لذا ایده از اینه یعنی که ما اصل تاخیر نداریم چون بالاخره ما انجام میدیم اساسا تاخیر چه پایه‌ای داره چه تعبدی بخواد شارع ما تعبد بگن تو ما مخیریم من مخیرم بالاخره ساعت 12 یا هستم یا نیستم اجدادم که ممکن نیستم باشم هم نخواشم پس لذا اساس تاخیر معنایی نداره که ان تعالی در مهندش متعرض خارج شد که آیا اساس تاخیر داری یا نه فقط اشاره اجمالی رو که اگر اساس با تخییر ثابت شد ما سه تا تخییر داشتیم داریم. یکی تخییر واقعی اصطلاح رو ادام بگم که آره تخییر واقعی مثل تخییر بین خسال فرفاره اونجایست که از دلیل استفاده میشه یکی تخییر ظاهری جایی که ما به اصطلاح یک دلیلی داشته باشیم بر اتباع ظاهر و دلیل و ترجیح ثابت نشه مثل ساکه هایه اشون که ترجیح لازم نیست ترجیح به کتاب و سنت رو از مقدمات و میدونن بقیه رو از منجحات میدونن میانی کن منجحات ثابت نیست و مختلف هم هزروازشون مختلفه پس تنابراین ترجیح مستحبه به ترجیحشون ترجیح اون ترجیح ظاهر شما مخیرید این خبر عمل کنید یا خبرگی این اصطلاح تحصیل ظاهری میگه یکی از تقریر به ما مستوی اصل عملی تقریر عملی این همین اصل اسال تخیره که اینجا ذکر میشه ان شاء تقریبی که عرض کردم این رو ائدی بعد از شیخ منکرام چون میگن شما به لطاری یا انجام میدید یا نمیدید اما فعل و ما تخیری رایجی که نداریم پس اسال تخیریم چه ششی است اصل نام اساس تخیر نه این راجب تقریب که سه بسید شد راجب احتیاط هم معروف و مشهور در علمای ما چه اخباری های ما و چه اصولی های ما لزوم احتیاط در اطراق مثل علم اجمالیسی این معروف و مشهوره اما در همون جا هم مخالف داریم مثل محروف مجلسی و دیگه هم از اصولی هم داریم مخالف داریم که علم اجمالی محجز نیست لذا اصول تشتیزی در اطراف علم اجمالی میشه لیکن مشکول برای اینکه هر هم و انشاءالله بعد متعرض میشیم چهاش دیگر به هر حال اگر احتیاط در اصل عملی که اینجا مظموشه که اگر احتیاط ثابت بشه در حقیقت خود دقت کنیم ما سه نوع احتیاط داریم یکی احتیاط به حقم عقل نظری داریم مراد از اختیار گفتن عقل نظری این است که عقل حکم میکنه اگر احتمالاتی بود تو تمام اون احتمالات انجام دادی به واقع میرسیم این اختیار علام مستقل عقل نظری این کار رو را هر املا خوب دقت بکنید شما مثلا 6 تا احتمال می‌گی که این آقا گفته فلان شخصیا فلان شخص 6 نفر رو گفتم یک نفر رو گفتم من مرز بین 6 نفر شما هر شیش نفر رو میکنی، میکنی، اکرام میکنیم مهمانی میکنیم اکرام میکنیم وقتی این کاری که اقل رو حکم مثل حساب دو در دو میشه چهار دو دو تا چهارتا اقل حکم میکنیم شما تمام محتملات انجام دادی، و از تمام واقع انجام شده این دومار اسمش کشیم احتیاط به مستوای عقل نظری دو احتیاط به مستوی عقل عملی در عقل عملی دنبال حسن و قبله. دنبال معذار واقع و اصابه به واقع نیست دنبال این هست که مثلا پرشمین زور باش یا نباشه آنه بر تصدیر مشروع کمال باش یا نباشه مسادیه و اناوین عقل عملی رو حساب میکنه این طور نیست که در عقل عملی جگه تو تمام محتملات انجام ببره گاه اوقات در احتیاط در مستوی عقل عملی مثلا میگه در این مطلعه تحت بیشتری کن. بیشتر دقیق کن نه اینکه چون سه تا احتمال هست هر سره انجام بده نه اینه شاید عقل در مرحله عقل عملی که استکمال باشه و حسن قابل باشه بمبیه و حسن شاید اکیان جمعی احتمالات و حسن ندونه یک اصطلاعی هست احتیاط در ترک احتیاطه این احتیاط اول عقل عملی احتیاط دوم عقل نظری یعنی گاهی حکم عقل است که بهتر از تو تمام احتمالات انجام ندی، این رشدتو نیست. این کمالتو نیست. این عذر نیست. این حسن عذر نیست. این خودش ظلمه. گاهی اوقات مثلا عقل عملی اختضا میکنه که فرص بیشتر. فرصوی در مورد یک نفری فرصوی در مثال خارجی غیر تربودیان سه تا دکتر و سه تا دواب برد. شاید عقل عملی این نباشی که شما هر سه رو به مریض بگیر برد بکنی. اونجا احتیاط این شما هر سه رو به مریض بگیر عقل عملی دی. اونه که دنبال پست قوه اینو قسم نمی کنه اصلا ممکنه عقل عملی بگه به قول هر کدام به تنهایی انجام نده لجنه فبری به یک کمیسیون پزشکی تشکیل بده قینا نفر، ده نفر با اندهی نظر بده نظر نهایی را این احتیاط روی مستوی عقل عملی غیر از احتیاط روی عقل نظری است این البته علمان ما هم اجمالا طرف داشتن نه این که نداشتن و گاهیم که اینطور رو عبارت بودن احتیاط در تر که احتیاط مراد جدیشون اینه و لذا حدیث در که دینو فرست دینه معلوم نیست مراد احتیاط عقل نظری باشه به احتمال بسیار قضی احتیاط و مستوی عقل عملی یعنی بیشتر فحص و تفقیص و تدقیق و دقت نظر و اینها نه اینکه که مثلا رو سن کلت رو خواهیم پنج تا احتوال اجام بودید اخوک دین رو تو اونجور معنا نکنیم فخص تسل دینه اون احاسب احتیاط البته به اقل نظر این احتیاط چیز رو من اینجا بازی این بحث کنیم چون متعارف این برس رو تو اول اشار تقریب متعرض میشین این که میگن یا مشعل از یا مخلید از یا اونجا متعرض میشین وکه اینجا حالا به هم به اصطلاح برای اینکه که یک احتیاط هم به مستوال یا اصل عملی داریم. پس سه تا احتیاط شد یکی به مستوای یا عقل نزدید این عقل رو حکم میکنه شما احتیاط کرده خود رو تو معنی احاطه کردن شما تمام احتمالات رو کردید، این نمر کلام آیا این حسن آن املا به مصطبای عقل نظری احتیاط است جای شد شما چون احتمال انجام ده لیکن حسن خود املا دوم احتیاط به مصطبای عقل عملی سوم احتیاط به مصطبای اصل عملی این اصل عملی هنگ هنین اصل هم حصول ما متعرض میشید عز این اصول عملیه جزء ادراکات اجدایی نفس‌اند فرقش با امارات اینه که امارات ادراکات انتبائی نفس‌اند این ادراک تا نباشه تنجید نخواهد این ادراکیا انتبائی یا اجدایی ادراکات انتبائی رو اصطلاحاً اماراتش میگن حججش میگن طرقش میگن ادلهش میگن و ادراکات ابداعی رو اصول میگن این احتیاج و مستوی عقل عملی این در اصل عملی من این در حقیقت جزه ادعاات نخصه مثل این که میدونه که برقبه این نظری انجام داده نمیدونه نظر کرده صدقه یا صلاح تو کتابش نوشته این صدقه رو نوشته صدقه با صلاح اشتباه کنگه میشه نمیدونه صدقه باید بده خب در اینجا به مستوی عقل به اصل عملی میگن هر دار انجام بده این ادعایه ابداع نفسش مالی اینجاست فرق یعنی نقطه همیشه در ابداع نفس و اون نقطه فندیش رو در نظر بگیریم فرق بین انتباعیش با ادراکی ابداعیش اینه انتباعی شما یکیه یا صلاف یا صدقه این انتباعی شما اما ابداعی شما دو هست هر دو انجام بوده این میلیار در ابداعی و انتباعی بودن اصل ثبوت می هم که مرحوم شهر دوز و و غیر تنظیره داره و اصحاب ما اصحابت البراعه از کردیم اصحابت البراعه به این معنا که شارع مقدس بیاد به شما بگه شما اگر جهل به واقع داریم این حب نداری زارن. این ظاهرم این نفیه یک نوع تنظیره یک نوع ابداعه این توضیحاتش چند بار گذر ما اصل البراعه رو این معنا قبول نداریم این چیزی نداریم نه حدیث رفت مفادشی نه, نه بقیه احادی حدیث راست تنظر هم صحیح نیست اشکال سندی داره و اشکال دلالی داره و رکبی که بین مقام نیست اون چی که ما به عنوان اصاصل برای از داریم این هست من فقط در ادله کردم این ویژانی این ابداعی هست بالا بالاتر از انطباعی این, این ویژانی هست دلیل تیدا نکردم این هم ویژانی هست اگر دلیل نبود بر حکرین منجز نیست خوب دقت کنید منجز نیست این اصل اصل عملی نیست این بنای اغلاست سیره اغلاست ممکنه است اغلا بگن شما دقیدن پیدا نکده منجزه احتمال منجزه یک سیره ایز بنای اغلا به اصطلاح مرموم قاعد وحید بهبانی و من در قبعه قابلا بیان ما از قدیم قاعده قبعه قابل بیان یک تعدیر کلامی است ولی در اصول اوبردن هر قطعا هم یک کلامی است ولی در اصول اوبردن بهتر این است که در اصول تعبیرات اصولی باشه کلامی نباشه ما بوجه تعبیر قرطه قابل بایان میگیم حکم منجز نیست دلیل سیره اوغلا بنای اوغلا اما این جزه احکام عقل عملی نیست ضروری نیست که قابل تفکیک نباشه ممکن است که به احتمال منجزه محتمله و که فعلا بنایه اغلا بر این است با عدم وصول دلیل حکم منجز نیست سه چهار اگر حکم منجز نبود موضوع احکام جزایی نیست این هم سیر ها پس ما چیزی به نام اصافت البراه نداریم که جزو اصول باشه یعنی یک نوع ابداع نقصی باشه یک نوع ابداع ذهنی باشه یک نوع صورت ذهنی ابداعی ما باشه دوتا شبیه ایرانی دوتا شانسریه و علام اینه که در حق ما نیست یک نوع تعبیر ادبی است نه تعبیر قانونی بله اگر از این تعبیر قانونی در آورده میشه چه اصل هنری چون بر فرزندیم نیست مثل جلال جلال دوادی و قربانهایو یا جلال میزا این یک نوع استناد مجازی بین استناد مجازی یعنی بین تعبیر مجازی با تعبیر قانونی با فرق این تعبیر قانونی نیست پس اساس البراءه هم پیش ما جز و اصول نیست میونه استصحاب از شد در بحث ثابت یک چیزی داریم شبیه استصحاب به نام حیاض اون چی که ما این استصحاب و حیاض و اساس سحاره هر سه اصولی هستند که حکم معین را ثابت میکنند اون سه تا اگر ثابت بشه عنوان عنوان اطراف علم اجمالی اینا نه مثلا خیاس در یک جا میگه حرامه در یک جا میگه واجبه استثال در یک جا میگه واجبه در باری خیاس اساس و سهاره هم بر معروف چون تهارت اثبات میکنه ثابته لیکن ارس کردیم انصافا اساس و در شباهات و حکمی اولا در اصول بخشه میکنی چون مورد خاص در کدا تهارت در کل لا ابوص اصول سرایان نداره و بنا چون بر اساس طهارت یعنی اساس طهارت لاچواب حکم یک کلی قبول کردن ناوین هر چه شک بکنیم فلان چیزی دیره که خدا مثلا ما شما نمیدونی به طور کلی این اساس طهارت مثلا حیوان متولد چیز جدیدی که حالا اسمش نبوده اساس نه قاعده اطهار است من ویروس سودیاشتن دیگه تکرار نمیخوام بگم لكن اصل اساس و و دلیلش یک و رفتن و اون یکی در دارت هم سقط امار ساباتی فتری نقل کردید اون دلیل هم اینوانشین کلوشه ای ندیف حتی تعلیم انه و قدر تاهر از کل این کلوشه تاهر ای سید سارفه ما ها کلوشه ندیف حتی تعلیم انه و قدر انصافا این رو ترمیم دادن به شما تو حکمیه همچین یک کمی آدم بزرگ عربیش دوید کلوشه ندیف این نزاکت موضوع خارجی بیشتر شبیه تا شوابط حکمیه حالا به حال چون این موردیه من عرض کردم و اصول هر بحثی که در کل مبادئ جایی میشه بشه اصولی هر بحثی که در یک جای معین جای میشه میشه موردی فقهی اساسا تارم در شوابط حکمیه ثابت میشه میشه فقهی اصولی نیست اما اونی که اصولی است در حقیقت دو تا است یکی قیاسه یکی استطاع فرد این دونا هم به این نکته. قیاس اصرار بک از یک موضوع به موضوع دیگر به یک جامعه چه ما انتظار کردیم فهمیدیم بشرتیدیم فرطب رویاب الافصادی این تمستح کن کن مثلا دلیل آمد در قرمت شراب و انگوری بگیم شراب و هم حرامه به خاطر رابط رابطش هم یعنی حکمی که در یک موضوع در موضوع دیگه اثراتش بدی رابطش اسکار البته اسکار ذکر نشده ما استنباط کردیم استظهار کردیم استفهام هم شبیه اونه از همین نقطه اثر او در موضوع واحد از حالتی به حالتی این فقط جا رابطش هم موضوع واحد موضوعش رابطش هم یعنی این ذن خونه هیز میدید یه همون وقتی ها حالا این از دم و قبل انساسته میگیم همین در دو حالت هست این موضوع در دو حالت وجود داره حالت وجود دن حالت اینکار دن حکم و قرمت که در حال وجود دم بود توسط وقتت موضوع اطراع شدیم با حال اینکار این اینم سرعی بوده که در کتب قدیم استثاق و رو با هم میابردن حتی تو معالم خیلقیات بالاستطاب فر این نمال کلام حالا من باردون بحثشون میخوام باشم این نمال کلام حالا یکی باشه این نباشم یه توضیحی داده که فردا هست میتونم نکته اینه آیا این هر دو جز امارات هم؟ یعنی ادراکات ابداعی انتباعی ما هستند هر دو جز و اصول هم ادرافات ابداعی ما هستند جزوه امارات استثاب و اصوله که ظاهر کلمات اصحابا اینه توی انصداد قیاس رو اونجا دیگر کرده تو امارات اما استثاب و تو آخر اصول عملی آورده یا نه استثاب و قیاس هر دو جزوه امارات هم فقط فرقش اینه استثاب جزوه اماراتی که جنبه حکایت نداره به خلاق قیاس این از کلمات مربو استاد استفاده میشه پس در انقیاد یا رعیه اساسی تصور میشه جزء امارات یا جزء اصول. در استثام در حقیقت سه رعی تصور میشه جزء امارات باشه و تمام خصلت اماراتو داشته باشه جزء اصول باشه تمام خصلت اصول رو داشته باشه جزء امارات, امارات, جز امارات, امارات, جز امارات باشه اما بعضی از خصلت‌های امارات نداشته باشه ایزای ماکوسلامی مجمع آموز استاد دایروخویی ای اعتقادش این بود که استثفا جز اماراته، لکن امارات رو ایشون دو قسم می‌کنه. اماراتی که جنبه حکایت دارن مثل خبر واحد، اونها مثبتاتشون حجه ده مثلا. اماراتی که جنبه حکایت ندارن مثل استثفا. و این بحث الان در کلمات اصولیین معاصر ما از زمان شیخ، بر، غالبا این رو بحث کردن. گفتن که نوکریش اینه که اگر استصحاب یا یعنی حکم عقل و اوغلا این حرفا ثابت بشه جزع اماراتی اگر به تعدد ثابت بشه جزو اصول آیا نقطه فنی چیه است چه نقطه‌ای وجود داره که ما بیا و یا استصحاب رو و امارات بدونیم یا جزو اصول اون نقطه فنی رو باعث پیدا کرد که حالا اوغلا باشه یا تعدد بره باعث بشه این کافی نیست این بسیار نقطه ضعیفیه ان شاء ما در بحث‌های آینده اون ذرافت این نقطه که آیا ما استصحاب رو جزء اصول بدانیم یا استثحاب رو جزء امارا قیاس رو جزء اصول بدانیم یا قیاس رو جزء امارا این دوتا اگر ثابت بشه ما از اصول عملی به و برزا خودمون اصلی خواهیم داشت که در صبحات و به عنوان ها جاری بشه لکن قیاس که خب روایات ما مستداته بر از محجر قیاس بنده هم افاقا به اده از احلام استصحاب رو در شباهات و وکیونه کلیه جاری نمی نه با خاطر تا آرزی که مربون مستاد فرمیدن البته تا که دارم که مربون مستاد فرمیدن ما یه توجیهی برش کردیم برگردیم به همون نقطه فنی چون برای اون یه نقطه فنی داره ردامون جد استصحاب در شباهات و وکیونه نه تا آرز تا آرز حل وکیونه نتونیم نه، نکته نوتبه تعارض می، استاد هم مراد جدیشون اون بوده، ظاهرا تعبیر به تعارض تعبیر فنی نباشه پس بنابر این از این اصول عملیه که الان شیخ در اینجا آورده براهت اصل عملی نیست، قیاس هم که ایشون ذکر نکردن، اون هم که حجت نیست، استصحاب رو ایشون ذکر کردن، اون هم به نظر ما در شواص حکمی کلیه حجیت نداره، از حجیت صاحب میشه. میمونه مسئله اساس تاره و خب بنای اصحاب بر این است اصالت در شواهد و جاری، این اینم بحث اصولی میست بحث فقیل بحث نفسن شیعون شمول دریم برای اونجا پس میمونه از اصول دو دوتا از طالت الاسدیاد و اصالت تخییر که هرزا اصل غیر تنظیری هستن پس ما اصل تنظیری در شواهد و حکمی کلیه نداریم یک اصلی که بیاد بگه اینجا واجب، اینجا حرام، اینجا اینجوری. احتیاط نجست اینجوری افتیات و تختیر عنوان نجس نمیده میگه وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی عنوان نمیده دو تا داریم که به نظر ما اصلا هر دوم عنوان میدن یکی فیاسه ایکی هم که هیچ کده اونش هم در شبا ترکمیه حجت نیست اما را اینشار روزه شده هیگه از ارخواست شدی که ما جمعه فکرین کلا در کلمه که شیخ من جال بوده اصلا نیامده به نظر ما تکیش اینه اون بحث انحصار و وارد و مورد و اینه اونام به نظر ما هیچ سماره علمی نداره و سال الله و